الو سلام حالتون چطوره پور توسلی هستم بله خوب هستین قربونتتون مرسی شما خوب هستین ان شاء الحمدلله خیلی ممنون شو خبرو مرسی حازه بودیم شماره اصفهان بزنین تو سایتتون برای تماس اصلا اسم پادکستو واسه این پادکست اصفهان دقیقاً که نه. مثل اون سبک یه سبکی بوده موسیقی سنتی صدف که اصفهان. آره پادکست پادکست اصفهانم داشته باشیم ما معماری اصفهان داشتیم، موسیقی اصفهان داشتیم. آره ولی در چند سال اخیر اصفهان محجور مونده بعد نیست که پادکست اصفهان داشته باشیم. واقعا محجور آه. مونده در چند سال اخیر؟ ها خب حالا دیگه سبکی مثلا ویندوز اصفهان مثلا ای چیزای اینجوری که نداشتیم دیگه مثل قبل حالا چم دونم به قول شما موسیقی اسفحان و معماری اسفهان دیگه تقصیر خودتون بوده دیگه کوتاهی نکردید کوتاهی نکردید کوتاهی کردید ببخشید کردید. کردید. البته فیلی قذبینی اومد و قبل از, از شما مورد... یه پادکست رو انداخت البته در مورد شهر داری من فکر میکنم اسفحان پیشتاز بوده یعنی الگو شده برای بقیه شهرها من نمیاریم دیگه بالاخره یه چیزی پیدا میکنه آره خب در, در, در, در, در این و یه اصفان. چیزی هم گفتیم من هیچی هیچ بحثی روش ندارم چون اینش اطلاعاتی ندارم نردش کنم خب من فکر میکنم که مثلا به این حالا تا اونجایی که سن بنده و شما اجازه میده این هستش که تو پونزده سال پیش یا بیست سال پیش انقدر شهرها از آز فرض فضای سبز و نظافت و اینها به اینقدر خوب نبودن که الان هستن و اسفهان اول مثلا با یه سه شهر داره که اون سالها داشت اولین شهری بود که از جارو استفاده کرد تو خیابونه نه حالا نمیدونم شاید این ماشین های مدرن جارو رو شاید واقعا اولین شهر بود. ولی میدونم که گل کاشتن و گل کاشتن و اینقدر هرچون اوایل مردم میکندن اینها باز میذاشتن و این فرهنگ جا انداخت خب همین کارا رو کردین از این آبزاینده رو تموم شد دیگه هی hey, شهرداری کاشت رو آب دادن به این چمنه هم. و گلا اینا قبول دارم و هی چاه زد خب دیگه آره شاید حالا آره دیگه مورد اون معقولاتش نمیتونم دیگه نمیدونم سر به آب که برسه و بعدم بخواد بیاد سمت شرکت آب و این حرفا دیگر بعد دیگم خداحفظه شما از وقت نتونستین دفاع کنین از تئوریتون. شاید نه تیوریم درسته در مقابل شما البته آدم کم میاره دفاع کردن یه جایی مجبور عقب نشنی های تکتیکی بکنه خواهش میکنم خواهش میکنم باره موضوعتون چیه شما برای به جز داری؟ شهدری موضوع نبود پیش آمد بحثش ولی کن موضوع که منتظرم موضوع که شما بهش فکر کردین رو بشنوم و خودم موضوعی پیشنهاد ندارم بکنم ما این موضوع توریسم جالب شد هفته قبل آره و میخواستم ببینم که چی شما میرین یه تجربه توریستی دارین توی یه رستوران یا تو هتل چیش میره تو یعنی این آ ناخوشایند ناخوشایند ترین چیزی که اتفاق افتاده توی یه رستوران برای شما چیه آه. یا تکرار آه. میشه این چیز تجربه ناخوشایند از محیطش به من اه، اه، یعنی از محیطش به من برن... هر چیزی از کل این تجربه آه. رستوران رفتن آه. یک وقت من یه جوری خوندم وقتی خود از خیلی بچه هم, هم کوچیک بودن این هفت خیلی به دلم نشست یه جمله انگلیسی بود که تایپش نمی گفت که دو راه های زندگی کردن هست یکی با کلاس زندگی کنی اوروید کیدز یا با بچه <تصفيق> و من بدترین ترشوبه که توی رستوران داشتم مسئله رستورانش نبود مسئله پوزیشنی بود و اتفاقی افتاد که من و بچه هام اونجا اتفاق افتاد برامون. حالا <تصفيق> بعد اصولاً من تو رستورانم که میرم خیلی توجه میکنم به اون خانواده که بچه دارن که حالا اونها تو این موقعیت این مثل من گیر کنن مثلا چکار. چی بود داستان؟ موقعیت چی بود؟ موقعیت این بود آقای سخاوتی که من دخترم مثلا چهار سالش بود و پسرم نه شدم کمتر از چهار سالش بود و پسرم خب حرف درست نمیزن مثلا یک سالش هم شاید نبود و دختر بنده خیلی اصرار که مامان بریم پیتزا بخوریم و مثلا من خواستم خیلی مادر خوبی باشم نه نمومان امشب میریم یه رستوران خوب حالا پیتزا چیز خوبی نیست و این حرفا و رفتیم رستوران رفتیم رستوران از شانس بد من سه تا دختر جوون و دو تا خانم مسن وارد شدن که اون دختر ها مثل اینکه این چیز داشتن، تصمیم داشتن که پیتزا بخورن و مامان بزرگاشون یا خاله نمیخواستن و اونها پیتزا رو گرفته بودن و اومدن اونجایی که مامان بزرگام حالا رستوران هر غذایی میخوان سفارش بدن. و اینا قشنگ شد من پشت سر ما و این دختر من تمام وقت داشت با دهن باز و آب از دهنش، وی اینا رو نگاه میکرد که پیتزا میخورن و اصلا من هر چی میخواستم یعنی هرچی چی دستمال کاغذی بود من درآوردم، چه میدونم. چیز درست کرد و تمامده میخواتم حواسه اینه از این پیتزاها. این فاصله. بین در اون فاصله زمانی بود که پیتاش پیتزای شما آماده بشه ما که پیتزا نمیخواستیم ما یعنی رفته بودیم رستوران و به دخترمون کدی حرف بده بودیم که ما ما پیتزا چیز خوبیمخ شانس بعد ما تو اون رستوران سه تا دختر اومدن که پیتزا خریده بودن و به رستوران رستورانم صحبت کردن گفتن مامان بزرگامون نمیخوان پیتزا بخورم ما میخوایم پیتزامون بیاریم نه اینجا یه چیز دیگه ای. آها پیتزاشون از جای دیگه آورده بودن. آورده بودن. و آه هر آه آه از آورده نشده بود. و آه تازه فهمیدم من. و این دختره من تمام وقتش اینا رو نگاه میکرد بندگان خدا اونا پیتزاشون زهر شده هم شده و هر چی میگفتن. هر چی عزیزم این اسلایس مال تو میگفتش که نه شما خب خوبی... باید شما اجازه بهش می دادیم هم خب دختر بندم اونجا فقط همین همینون گفتن پیتزا چیز خوبی نیست فصل بود بده اصلا ما امشب می خوایم فصل نخوریم دخترتون اینو می گفت بله چیزه... در چهار سالگی بله یعنی چیزه... شما دخترتونو در چهار سالگی شستشوی مغزی داده بودیم خودش رو معو می گفت. و چیش میم از ما برده حالا ما قافل از اون پشت سر ما یه خانواده دیگه نشسته بودن خیلی با دیسیپلین یه آقا و خانم محسن با دو تا پسر بزرگ خیلی شیک نشسته بودن جوجه کبابشون بهشنا میل میکنن. حالا اون پسر بندم که بغل من بود که مثلا من قافل از این بودم که حالا فکر می آرومه این دوشونه من اینم انقدر لغمه ای که اونم میخوردن. آب دهنشو خورد داد که من اون آقای متشخص باشدن و یه چنگال و یه جوجه من اینو لطفاً بنیم به پسرتون و اصلا من رازم فریاد نگه همی داشتین شما و بچهاتونو اون روز خیلی, خیلی گروز بودن. شان به فرد من بودن. قبلش پارک بودن نمیدونم یک جایی بودن که خیلی خسته بودن اون شب من آخرین باری ده. که رستوران رفته بودن قبل از اون فاری بوده. اون شب قبلش. شب قبلش بوده شب قبلش بوده. بوده. بعدشون اون سال سالها من یادمه که خیلی خیلی رستوران می, خیلی رستوران رستوران می رفتیم. یعنی خب ببینید شب... این الان به نظر من این موضوعی که شما مطرح کردین یه موضوع خوبیه منتخب با موضوعی که ما داریم متفاوته. الان موضوعتون الان این موضوعی که شما میگین تربیتیه. و به تربیت بچه ها برمیگرده و اینکه شما در اون لحظه به عنوانی مادر چه کار باید می آره خیلی سخت بوده این غذای ما آمده. یعنی اصلا من از این همه چیز اصلا خود شده بود. ولی کن اون چه که رستوران بریم و آزاردهنده باشه شاید اصلش تمیزیش باشه برای من. <تصفيق> محیطش تمیز باشه بعد سر و صدا مثلا هی آرم توی رستوران شسته هی این صدای مثلا 743 یا 745 او او اون که فاجعه است. همین تو تو گوشش نیاد این آره. هم میتونه یک چیز آزار رهندهی باشه آره آره دیگه پس شما خیلی پانه این تو رستوران خیلی استاندارداتون بالا من تحصیل میکنم شما یه دوره داری بریم <تص> نه من ترجیح میدم همین فادرام هم که بالاست پایینش بیارم که خوش بگذره. خوش بگذره. آره والله. شما رستوران میرین بهتون خوش بگذره میریم غذای خوبی بخورین آره برای آره من اصولا رستوران میریم که یک چی باشه، یک مراسم فامیلی باشه. نه اینکه بگم فامیل گسترده ولی چهار تایی. مثلا خانواده ما اون یه شب و نه تلویزیونی جلوشه نه اصولا حالا متاسفانه که تا وارد میشیم که تو اون دو حبی که پشتره هم رفته بودین با بچه‌ها رستوران هر دوتاش تاش فامیلی بود آره ما همیشه مثلا بیشتری همین اتفاق میافتیک که خب چون شو هم نداریم فرصت شام هم هم نیست خب بریم رستوران یه چیزی بخوریم منظورم اینه که ولی اون سالها که درد ناچاری بود که مثلا فرض خیلی گرفتار بچه و کار و اینها ولی توی این اخیر که حالا اون غذایی آنچنان حاد نیست و اصولا غذایی یه جوری میگیم درد... این سالها درد ناچاری گام مثلا رجوع سالها قهتی داریم سن... اون سالها ما درد ناچاری داشتیم اون سالها من درد ناچاری واقعا چه میدونم بچه های کوچیک و این حرف حالی وقتی اه... ب... مثلا حالا در اون سالها. حالا اه... ولی که الان وقتی ما خوایم تصمیم بگیم به این رستوران واقعا به خاطر اینه که حالا چه میدونم چهارتایی با هم بریم یه چیزی بخوریم به خصوص که. اه... میدونین الان این فرصتی این که وقتی آدم تو خونه است حالا شایدم این که تو خیلی خونه ها البته من میدونم هست که وقتی آدم تو خونه سری یک ساعت معین همه نمیشنن می نیست مم. و با هم این شام رو بخورن حالا نحال که هر کسی به نوبه خودش محیط کارش بیشتر حتی بچه هم مثلا دیر یعنی شما واقعا این مشکل رو تو خونه تو؟ و آره. چهار نفر نمیشینند سر میز شام همزمان؟ نه ما وقتی خونه ای مثلا شام باشه و وقتی خونه باشیم آره ممکنه این اتفاق نیفته چون حالا فرض کنید خانه من... هم گسته ای داریم شا... اه... <تصفيق> آقای سه خوابت میکنم <تصفيق> شما میگین لطفاً تماس بگیرید. دمیدین تو خدا؟ <تصفيق> واقعا این که هست تو اکثر های امروز این اتفاق می‌افته وقتی آدم تو خونه است که حالا پانی میشه اینون همه چیز کنه که حالا وقتی که واقعا این مسئله رو به این راحتی میشه حل کرد که این این اونم جمعه جماعت یعنی به مساله اینکه شما همزمان بشینی سر این, این کجا و اینکه پاشی بری رستوران و کلی هزینه بکنی اونم با این رستوران یه قیمت اصلا تو کهت من نمیره یه جایی کار می لنگه اینجا ببینید. شما یه چیزی رو داریم مخصی میکنی شما بزنید تا بزنید وقتی هم تو خونم باشین چهار تایی بشین از سر یه میز تایم بگیرین که فرض کنید مادر خونه میزوی که چید گفت بیاین شام میان هفت مثلا هشت بیان هشت دروب همه پاش شدن غیر از این که نیست که دیگه چقد میشینن یه جوری میگیم که مثلا اینجار از خانواده جای دارن قالی بافی میکنن نمی دونید آقا جون میرن جلوی هر می یکی میره جلوی تلویزیونش میشه یکی درس داره یکی هم هر کسی میره خب اینا به حال بر اساس یه تایم میخوان غذا بخورن یا نه بحث اینه که وقتی میریم رستوران حالا من خودم رو میگم وقتی ما میریم رستوران حالا تمام اون مدت که نشستیم دور اون میز یکم بیشتر با هم چشم در چشم صحبت میکنیم این خب این که این کارو میتونید تو پارک بکنیم نمی دونم تو... خب بله اصلا تو رستوران... ما این کارو میکنیم مرتب ماشاءالله دیالوگ و آی کانتاکتمون به ولی خب حالا مثلا فرض کنیم که پسر بنده یا دختر بنده تو این سنی که الان هستن اینو خیلی دوست دارن خیلی دوست دارن که برن مثلا یه رستوران جدید خب همین رستوران جدید که میرین الان سوال بنده اینه این رستوران جدید که میرین بد نقصی نقصانی کمی کسی، چیزی توش نمیبینین که ازیتتون کنه و راجع بهش صحبت کنین من اون تا... کلاسای هتللاری و این که اون خانم هفتم هفتهم گفتن خب اون دانش رو من ندارم من نمیتونم بگم آیا این صندلی برای این فضا مناسب هست یا نه فقط ممکنه ببینم ظاهرش اوکی رنگش قشنگه به این رنگ ها میاد این مثلا اون حالا اون یا نه کلا این فضا فضاییه که در نگاهه من فضای قشنگی هست یا نیست؟ فضای قشنگی از آرام است، نمیدونم تمیزه. مثلا با توجه به همون تجربه مشترکی هم که ما با هم اسمان داشتیم تو اون کافی شاپ معروف که عین سالن فرودگاه دائما شماره اعلام میکرد آله. ببینید کافی شاپی که سه مدل قهوه نداره. هم. خب این دیگه نیازی به دوره هتل داری رفتن نمیخواد که افتضا از این خب. ده تا این چیزا میشه اسم برد ولی یه چیزی که خیلی به سقا ذوق میزنه اینه که شما بری توی یه رستوران و روی میزش صفری، این صفره هایی یه بار مصرف نازک انباشته شده باشه ده. چیزی که مثلا شما تو پارک رو چمن قراره بندازی و غذا بخوری، پول میدی به یه رستوران که اینو بذاره رو میز جلوی شما. و اصلا من همه این حرفها رو زدم که این قورامو الان بزنم. و بعدم به قدری تنبلن این گارسونا و کار خودشون رو راحت کردن که تازه نیستن اینا رو دونه دونه پن کنن. 300 تا از اینا رو یه جا پن کردن اون رو که س... یه سهیش بردارم رویه رو برمیداری یعنی زیری باشه آره زیری ها میمونه یه اه... از چیزای واقعا وحشتناکی که به نظر من این چند سال اخیر باب شده اصلا این سفره یه بار مصرفه خیلی چیزه یعنی چندشاورترین چیزی که شما توی رستوران میشین تجربه کنید. و بعد از خودت میفرسی که خوالا این گارسونی که این کار کرده حتما به قدری بیزیه اوورلود داره کارش که مثلا یه نفر داره کار 6 نفر رو انجام میده گناه داره دیگه حالا و حال با این قضیه کنار بیام که مثل یه تشک روی میزمون نرمه به خاطر این سه هزار تا پلاستیکی که رو هم دیگه قرار داده شده و بعدم خوب اون خشخشی که میکنه و کلن ولی من ای تجربه ای نداشتم که این همه واقعا خیلی بده که اینقدر میز نرم باشه از انباشتگی سفره بار مثلا ولی خب کم رو داشتین دیدین این آره، رو آره دیدم که میندازن و اصلا خیلی هم درست و صاف و سوف پن نمی‌کنن چون اینا متری دیگه می‌برن و توی هر برشی مثلا شما اون تیکی هایی که آویزون میشه از کنار میز این کجوکولگیشو می‌بینی آره و بعدم این گارسونی که قرار بسیار سرش شلوغ باشه و بیزی باشه که نمیرسه بیاد یه دستمالی که هم، حالا اون دستمالم هم معمولا کسیفه، حالا اونم یکی دیگر از چیزاست بسته به اون میزان وصفاست شمای مشتری بعد میبینی که این اوقات فراغتی که به دلیل دستمال نکشیدن رو میز و یه سری چیزایی دیگه پیدا کرده وای میسه کنار میزی شما و بر رو بر به شما نگاه میکنه آه این خیلی بد درست دیدین؟ بله این خیلی بده که قدم مونده که در اون لحظه اونجا داره و از اون احمقانه تر که من اخیرا دارم میبینم توی بعضی از رستوران‌ها کافی تهران یه ماسماسه که چست به وسط میز یعنی مرکز میز رو شما در نظر بگیرین اون وسط یه باکسی هست مثلا به عنوزی در پنج ساندر پنی در پنی ساند که روش سه تا کلیک داره مهم. و یه چیزایی هم نوشته که مثلا اگر بخوای گارسون رو خبر کنی سمت چفیه رو می... یعنی احساس می‌کنی مثلا تو هواپیما رفتی آره بعضی کار نمی‌کنه بعضی کار, که... کار, کار که نمیکنه نمی‌کنه و بعدم اگر دو نفر یا پنج نفر الاف در هر زمانی که شما دورو براتون نگاه می‌کنید وایس دادن و دارن به حرفاتون گوش میدن یا زل زدن تو چشای شما چه نیازی به دکمه ریموت هم. مثلا به صدا کردن گارسون یا اومدن صورت و بعدم دکمه صورتحسابو که که یا یارو میاد میگه لطفاً این ببینید سند دو. آره. هیچ ولی من و, و, و بعدم ببخشید بشقاباری که میارن مثلا اون ظرف سالادو که میخوای بذاری اون وسط دقیقا نقطه یه که این ماسمسا که و ده هیچ کاریش نمیشه کرد. شما باید ظرف سالادو رو در میدونین یکی کمی یا من فکرکارم بعضی چیزهایی که مثلا فکر میکنن مدرن میشن برای اینه که یه کسایی بازاراب بند میان هی بهشون میگن این مثلا این فلان رستوران هم این کار کرده این فلان رستوران می کرده حالا ما این رو مثلا با اینقدر تخفیف به شما میدیم و اینا اصلا بدون اینکه بدونن که این آیا چقدر براشون به دردشون میخوره یا بعد هم ممکنه سر چند ماه بعد این رو بندازن اون ورا اصلا هیچ وقتم ازش استفاده نکنن حالا ما دیگه ما ریشه یابی نمیخوایم کنیم مصده رو که چی شده ها که بجوز این هایی که شما گفتین خودی کیفیت غذاشون هم آه. خیلی مهمه حالا اصلا رستورانی هست که به خاطر قضاش شما مکرر برین اونجا آ رستوران نه ولی از این ها که میدن بیرون کیترینگ ها آره آه. هست کیفیتش اینقدر خوبه که شما مروت ازش قضا مثلا ما هر چند وقت یه باری که عوض کردیم باز بین نشستم که نه نه واقعا همون بهتر ولی آه. ولی به یه جای رستوران که عوض کردیم ولی بین بد و بدتر انتخاب کنین درسته ام، نه خب حالا اینکه مثلا خودمون عوض کرده باشیم ولی مثلا تست کردیم جای دیگر هم حالا مثلا که کسای دیگری خبر کرده باشن ولی یعنی،, باشد... یعنی لذت میبرین خانواده‌ای که حالا یه مقدار از هم گسسته غذا میخورن در پای جایی که هستن از این غذای که تیک آوت ما نه اون تیک آوت رو وقتی که فرض کنین حالا مهمونی چیزی باشه داریم اون تیک آوت رو میگیریم ولی از اون اون تیک آوت مثلا حال از, از, از کیفیت غذا خوبه ولی جز اون هم آره شده جایی باشه که باز هم حالا من خودم خیلی سخت گیر به غذا نیستم ولی شده جایی که واقعا لذت برده باشم از غذا خوردن هم. اونجا تو تو اصفهان آره تو اصفهان و بعد خواستیم که برگردین و اون تجربه رو تکرار کنیم به خاطر اون کیفیت اون غذا شاید هم به خاطر محیطش بوده باشه حالا چون من یکی هم به خودم شک میکنم که فقط به خاطر غذاش بوده باشه چون من خیلی جایی که مثلا غذا میخورم و میگم وای چه خوشمزه است ممکنه بقیه یه لیست تودانی از ایراداش بذارم <تصفيق> ولی خوشم ولی, ولی مجموعه اون عوامله که اون تجربه رو می‌سازه دیگه م. یعنی محیط دیزاین اونجا نمی‌دونم آدمایی آره. که میانه که دقیقا. مثلا بچه‌شون زل بزنه به غذا بزنه نزنه <laughs> <laughs> آره ولی م... فرض کنید این اصفهان حالا مشخص اصفهان یه رستوران داره که خب شاید خیلی هم خوششون نیاد بیا خوششون بیاد زاگروسه من از این محیطش که یکم پیاده روی داره و حالا توی فضایی هستش که تو کوه خیلی خوشم میاد و اصولا البته من خودم چون خیلی صبحانه دوست دارم خیلی وقتا ما صبحانه رو دیگه کنیم یعنی جایی هست که صبحانه خوب بده بله خب هتل ها که میدن اون بماند ولی یک جایی هست توی جلفای اصفهان یک جایی خیلی خیلی بزرگی هم نیست و سپانش هم سپانه که به این خوا... یک چیز داره به نظر من میارزه از این لحاظ میارزه که پرسی میده نه اینکه شما میز اردو داشته باشه بخوری نخوری همه چیز رو با یه قیمت حساب کنه <تصفيق> <تصفيق> آه چی داره مثلا املت آم، داره چه میدونم نونا پنیر گردو داره حلیم داره از ایناست که املتای چیز کرده باشه پکیجای املت پیچیده شده باشه املت مکزیکیونه یا املت ژاپنی بعد آها آه، متفاوت نه نه خیلی نه همونه میکزیکی. فقط اسمای گنده میذارن روش بعد قیمته عجیبه نه آره اونم تجربهشو کردم یه جوری تو اصفهان املت مکزیکی رو هم خیلی هم متفاوت با املت معمولیمون نبود. بورش خیارشورایی که کنارش می دادن فرام می آه. آه، نه اون املت داره تو تخم مرگ داره ولی کن شما سفارش میدید و اگر که فرض کنید چند نفر باشن و چند تا چیز و کیفیت و سرویسش خوبه؟ من خیلی دوست دارم و به خونم شک می کنم از کیفیت ازم بپرسه. چون من خیلی سخت نمیگم من فکر خوب... همینقدر که شما بتونین بچه هاتون رو سرگرم کنین دویه رسکی برای تون یعنی چیز دیگه, من... دیگه ای نمیخواییم نه با... اون وقتی خیلی کوچیکیشون بود الان دیگه این مسئله ولی من هر کدوم از مهمون داشتیم از جای مختلف و من بردمشون هم از فضای اینجا خوششون میاد و هم از سپونشون منم هم به امان یه که اصولا میزبان بودم بردم و حساب کردم از مبلغ که دادم راضی بودم آها آه. آه مبلغ آره. مبلغ ها چقدر بیربت شده اینی آره. شما اگر توی نمیدونم لندن برین غذا بخورین اینقدر گرون نمیشه آره مبلغ ها واقعا خیلی گرون شده یعنی حالا بخواست سپونه رو فرض کنین خیلی جاها ها سپانه ها سی تومن بله بعد این دو تا پنج پیش من با یکی از دوستم که ایران نبود آمده بود از صبح تا از ساعت هشتونیم صبح ما اونجا صبحونه خوریم تو این مکانی که میگم تو جلفا و بعد ما کردن چایی و قهوه و این حرفا سفارش دادیم و تا دوازم اونجا نشسته بودیم مهم. و به نظر من خیلی خوب شد یعنی نفری نفر بیست و پنیزار خب من فردا بیلیت اسمه ها میگیرم اصری که فقط آدرستش رو رو طبعا برام بسرسین که پس فردا صبح برم اونجا صبحونه بخورم جده هم؟ فقط برای همین کار خب البته من مصاحبت دوستم هم فوقالاگه بود ولی خب برای قیمتش که میفرمایید آره عالیه ولی حالا نمیدونم شما اگه بخونید مثلا رستوران رو مدیریت کنین چه, چه چیزایی رو مثلا فکر میکنیم براتون مهمه بذاریم من فکر میکنم فضاش خیلی برام مهمه فضاش مثلا چجوری میکنیم فضاش؟ من همون چیزی که شما گفتین این همیشه پس ذهن من هست من حتما رومیزی های پارچهی میندازم رومیزی های پارچه ای و چه میدونم فضا رو گل چه میدونم کوزه های گل شمدونی یا کزای گل قشنگ میذارم سندلی هم رو از این سندلی های فلزی و اینا نمیذارم از این سندلی های چوبیه چوبیه حالته... نمیذارم من بهش میگم چوبیه لهستانی حالا بله. آز،, آره، از اونا خیلی دوست دارم اگه باشه و هست میخواین؟ نتون رستورانی که بخوام بذارم ترجمه میدم اینها باشه و دیگه این غذا و موزیکی که شاید باشه. آها آه بعد اصلا چرا توی رستوران که میری بوی غذا نمیاد؟ بوی غذا که میگم بوی تطخه غذا نه اون بوی یه مقدار توند و زننده آشپزخونه که مثلا حاصل سرخ شدن پیاز و اینا یا پختن گوشته ولی یه رستوران باید یه بویی داشته باشه، یه بوی خوشایندی باید داشته باشه. فکر نمی کنی؟ خب بوی خوشایند از بوی مثلا از بوی خوش کره و زعفرون و این حرفا رو شما می‌بینید. نمی‌دونم یعنی یعنی حس کنی زوان. که مثلا تو خونه دیدین موقع غذا میشه ظهر نمیدونم البته شاید الان دیگه نمیشه ولی ها میشه. اون موقعی که میشد. <تصفح> آره اون اون موقعی که حس می‌کنی مثلا بوی غذای آماده و اون رایحه اون اون چیزایی که خوبه. یه همچنین چیزی نباید باشه تو رستوران با این قطعا باید باشه ولی من دارم الان میفهمم که واقعا نیست یعنی الان شک کردم که من اکثر رستورانی که میرم نیست یا حداقل من, من اینو تجربه میکنم خوب آره اون خیلی مهمه که باشه ولی من فکر میکنم شاید هنوز بعضی رستورانا هست نمیدونم حالا نه، توی خو... بعضی از این کافی شاپ ها حتی آدم وقتی هم توش نره این بوی قهوه آره، آدمو آره. جذب میکنه یا بوی اون کیکشون توی حالا بعضی از این بیکری ها یا ولی ولی خیلی خیلی از کافی شاپ‌ها اینو ندارن دیگه مثلا اون کافی‌شاپی که ما در خب، اسلوان رفیق خیلی به خاطر این بود که تعداد افرادی رو که انتظار من نه نه اصن صحبت اون نیست ببینید ما بار... نیست ولی شما دریم به عنوان یک کافی شاپ موقعیت یک کافی من تهران رفتم چند وقت فیش همینجا مرکز تجاری گلستان تو شرکبند اصن ذره‌ای بوی قهوه نمی‌داد. اون خیلی بده. چون از بوی قهوهشونه که جذبشون میشه و بعدم سه نفر الاف بودن و این حدود 20 دقیقه طول کشید تا بیا سفارش ما رو بگیره. و بعدم توی فنجونی کاپوچینو آورد که اصن متناسب اون فن. حالا با این چیزای تکنیکش بله این خیلی مهمه که این سنجون متناقض آره بزن. حالا اصلا میگم با این چیزای تکنیکیش کاری نداریم و اینا بعد صورت حسابم نداد پا شدیم بعد میرفتیم اون گوشه رستوران گوشه کافی حساب میکردیم و تعداد آدمایی که اونجا بیکار پرسه میزدن اصلا قابل توجه بود و بعد موقعی که میخواستیم بریم یک دفعه مدیر کافی شاپ یا صاحب اونجا هم. هر بود مشخص بود که سنی و نوع برخوردش و حال خودش رو صاحبه یه سهنتی میدونست اونجا یه دفعه من نمیدونم از کجا ظاهر شد و دم در چونان بدرقه ای از ما کرد که اصلا کاملا این بدرقه رفت بود یعنی در رو برای ما باز کرد تشکر کرد از این که ما اونجا بودیم شاید اشتباهتون گرفت شد منتظر دیگه ای بوده شاید هم باز کرد نمیدونم ظاهر شد شاید نهای که آن ظاهر شد رسیم مثلا دوست امام اونجان حالا شاید هنوز اون دوستش نرسیده بوده ولی یا مثلا دوتا روانی اونجان اگر اینا رو خوب بدرقه نکنیم از روانیشن شیشه ها رو بشکنن نه ولی این که یهوشم فهمنیم ناگهان ظاهر شد نمیدم چرا این فکر به ذهن من رسید ولی خب بعضی وقتا که خب بعضی برخورداشون به نظر بیدلیله. منم از کسایی که خیلی زیاد توی رسطوران هایی کام دلار راس بشن و خیلی بخوان هی بگن این خوب بود این چطور بود اونم کمی. به جایی که اون چیزه رو واقعا خوبش بکنن که شما بیای تعریف کنی بگین مثلا کبابتون آره. خیلی حالی بود آره چون طرف بیست بار پرسیدن فکر میکنه این کبابه خوب میشه بعد اگرم بگین که خب مثلا فرض قهوه لاته که من جای دیگه خورده بودم انگار یکم بهتر بود بعد چیز میکنن تازه شروع میکنه به توجیح کردن توجیح با دلایل واهی بعد شما فکر میکنه که خب اون داره به من میگه که تو اصلا نمیدونی چی میشه یه آره. دلایل واهی میاره که انگار دلائل شما... دلائل نیاره شما اگه به منم مثلا این رو تو منوی من انتخاب کرده بودی چیزی بهت میدادم مثلا معرکه از اون ولی ام. آدم میگه خب شما پرسیدی من گفتم ولی دیگه بیش از این هم ادعایی ندارم آره یکمی آره. که میارن و فقط یه چیزایی داره پیدا میشه از نارضایتی های شما در رستوران کافی شاپ آره ولی عجبه <تصفح> هتل هم نارضایتی هوتلی هم داریم نارضایتی هوتلی که آره نارضایتی هوتلی هم داشتیم ام. اه, کجا ما هتل رفتیم هتل که حالا اونم باست کافی شافات. ما یه دفعه رفتیم بندراباس هتلش هم بد نبود ولی خیلی جالب بود که یک کافی شافی بود اونجا که ما هر چه که سفارش دادیم همون دیروزی آورد. مهد. فقط اسمشون فرق داشت بعد حالا فرض کنیم یه یک شب من گفت قیم. ما از تهران دست و حالا اگه همین سن مزمان خیلی سال پیش اگه این پنجزار تومن بود حالا شده 8000 تومن. ولی <تصفيق> یکیش بود هم 5000 تومن مونده بود. بعد ما گفتیم خیلی ده خوب پس هم 5000 تومن یه بر ما بیاد. ولی اینم هم همونه. اینم هم همونیه که ما شبای رفت سفارش می‌دیم و حالا قیمتش شده 8000 تومن. واو. ولی اون توش بعد همه اینها این‌ها رو مثلا یه چه آب یه آوپی یه بصلی همین بود. کاری که من یک عالم اصفهای مثلا ایتالیایی ردیس کرده بودم از انواع چیزهای مختلف اما دیگه تجربه از خود هتل. شما میدونین من قراره توی یه تو اصفهان کار کنم؟ آره فرایتا آره من به زودی میام فرایتا کار میکنم حتی هنوز استخدام هم قطعی نشده؟ برای همین اولش گفتم منتظرین که شما یک تلفن اصفهان اول اعلام امیدوارم که خانومی کریمیان زنگ بزنن امروز در من این اعلام آمادگی رو بکنم ببینم مخصوصاً دیگه ذهنتونم هتل رو شرایطی که افسانه هتل ها ناراضی هستند کافی هستند. من که اینکه میدونید دیگه پادکست موضوع میخواد همون همونجوری که رستوران غذا میخواد پادکست هم موضوع میخواد پادکست هم موضوع میخواد و تماسگیرنده از اصفهان این رو با هم, با هم چی باشه این با هم در کنار هم پیش آره در صورت خیلی ممنون که تماس گرفتین شما من روی خیلی راست نه خیلی چون یه, یه چیزایی کم کم یادتون اومد و, و بعدمون پیتزای اولیه داستانه خیلی جالب بود مرسی. آره خوشحال شدم قربان شما خودحافظ محمد نصری. الو الو سلام آید سلام آقای نصیری حال شما خوبی سلامتی. سلامت باشید شما چطورید قربان شما منم خوبم شکارو میکنید چه خبر ها سلامتی هیچ چی دیگه در هفته های پایانی به سر میبرم گفتم یکی دوباره مضاهمه شما بشم مبینم چه خبره خبرای خوب اوه اوه چقدر خوب شما رنگ چشمت چه رنگیه اه بکنم قهوه ی تیره قهوه تیره آه. یه اسمس من گرفتم تقریبا 20 دقیقه قبل از اینکه پادکست شروع بشه دلسته. که نوشته رنگ چشم یک سبز، دو آبی، سه مشکی، چهار قهوه‌ای، پنج خاکستری، شش اصلی شخصیت شما پشت این رنگ هاست. ارسال <تصفيق> عدد گزینه به مشکل گوشا هر پیام صد تومان. خیلی خوبه واقعا. حالا سوال من که اگر شما رنگ چشمتو اس ام کنی، چه جوابی انتظار داری بشنوی؟ به نظر یه موش چرندیات یه موش چرندیات شده <تصفيق> <تصفيق> ولی من فکر کردم که من خواستم رنگ چشم ام اس کنم بگم ولو مثلا بی خیال ببینم چی میگه باید ترسیدم در انداز رو چرا؟ <تصفيق> <تصفيق> ترسیدم که جواب بده که شخص شما شخصیت بسیار چیپی داری که میخوایی بسیار تو من مثلا شخصیت چیه سریعا خوب تاری کردیم گفتم <تصفيق> شاید مثلا این چیز این موچگیری و اینا نمیدونم والا ولی فکر میکنم اگر انجام جواب دونه خیلی اشتباه بزرگی کردیم چون کنم توی بانک اطلاعاتی وارد میشینم و مدام از این پیامات یه اتا میاد آه. اون که هستیم که میاد اینا ولی اصلا من یه گزینه هست که شما یه اس ام میفرستی که اس تبلیغاتی نیاد. بله،, بله من اونو فعال کردم و مدت‌هاس برای من نمیاد این امروز استثنا اومد اصلا اس تبلیغاتی من نمیگیرم. خب دیگه آخرش آره آره. من می‌خواستم یه شخصیت شناسیه بچه‌ها ما میدونن علیسا خوابه. فارس شخصیت با من فکر کنم به این خودش یه نشاندهنده بیان... یه نشان دهنده است که کسایی که شخصیت بسیار چیفی دارن با تا تومن شخصیت خودشونو به حال میخوان بشن ولی چجوری دلوقتي. میشه شخصیت آدم رو شناخت؟ اون برام سواش آه. قطعا باید بس که نمیشه باید روی روی روی چش قطعا نمیشه آره این که نمیشه مگر این ولی... که مثلا فقط خواهی شخصیت های چیف بشناسی ولی فراتر از اون چجوری میشه شخصیت های بچ می کنم با زمینه کردن کنار ادم ها شاید شخصیت حالا ش... صحت... فرض میکنی مثلا شما یه فرصت محدودی داری بز یه ذره سوالو دقیق تر بپرسی شما مثلا یه نفر رو در حد ده دقیقه می بینی یا اون یا توی بلد. جمعی بلد. تو این ده دقیقه بهترین کاری که میتونی بکنی و اینکه شخصیتش رو بشناسی چیه؟ اه... حرکات حرکتات و نگاه میکنی اها به حرکات رفتار داره حالا نمیدونم داره صحبت میکنه داره چیزی میخوره چه میدونم داره راهی میره داره شاید مثلا نشسته باشه خیلی هم حرکت خاصی نکنه مثلا آه. خیلی آروم و موطرانی پرتغال فوت کنه همون که مثلا خب همین همین که وقتی میبینیم که یه جا نشسته و آروم و قرار داره یه چیزایی از شخصیتش میفهمیم دیگه تا اون آدمی که مثلا میبینیم یه ذره تره یعنی همون حاله آره ولی ده. خیلی خیلی محدود میشه یه چیز بهتر بگو ولی آخه یه چیزی که مثلا نمیتونیم واخه دیگه میتونیم مثلا با ده دقیقه بگیم میتونیم این پاشو میذاریم زیر گوشش یا <تصفيق> یه چیز تو اینا میذ بگیم این <تصفيق> اینا جایی که ذره خودشون نشون میده خیلی ریسکش والا اصلا خب میتونیم مثلا این چیزی پرد کنیم سمتش یه چیزی که حالا خیلی هم درناک نباشه ضربش خب من دارم از اونم نگاه میکنم من خودم اون حالا میذارم جای یه آدمی که مثلا یه نفر میگه شخصیت منو بشناس خب من, من ببین این نه دیگه ببین این این چیز نیست الان اون اون دردقه رو باید از خودت منفک کنی یه کنم ده ده. کسی اونجا دغدغه شخصیت شما رو نداره شما الان میخواین شخصیت مثلا اون آقا رو یا اون خانم رو اونجا یکم بشناسید ولی به من... این اینکه این از از لحاظ روانی تحت استرس قرار میگیره خب شروع میکنه فراتر از اون چیزی که هست خودشو بروز میده. آره آره، دقیقا دقیقا. نظرت چیه راجع به این تئوری؟ دقیقاً ما اصلا من خودم گاهی اوقات تو خودم رو میبینم یعنی گاهی اوقات میبینم که خودم رو بیشتر از اون چیزی که هستم می نشون میدم. یعنی حتی قلق میکنم شو آپ دارم نمیدونم چه میگم. شاید یه جایی خودم کمتر نشون می میدم. نمیدونم واقعا دلیلش چیه ولی منم واقعا متعاقبه خیلی آدم‌ها دیدم که از روز فکر کردم آدم وای احسانه ولی وقتی که رفتم جلو دیدم اینقدر خورده تو زبقم چه مثلا چرا من از این آدم یه افسانه ساخته بودم ولی اگه همون در اولین برخورد یه مش بهش میزدی یه مقدار شاید مشکلیت کوتاهتر می‌شد کلا فکر کنم روز بدینه حرکت فیزیکی میچرخینا نه نه اتفاقا شما میتونین یه چیزه ا میزن بگی حالا نه توهین چیز ولی مثلا میتونید توی جمعی بهش به که خب مثلا این لباسی که شما پوشیدی برخلاف موده یا مثلا این رنگا به هم نمیاد یه همچین چیزی حالا بس به این که حس بزنی اون در چه زمینه حساسیت داره دیگه ولی من همسین کاری نمی کنم واقعا میگم جرات منم من همسین داریم نمی کنم با این تهوری فردازی میکنی من هم هم میگم فکر کردن حتی فکر کردم نازم کنم یه ذر رو سرکتر بسید خواهی خب پس موضوع امروز میدونی چی بوده؟ چی بود؟ موضوع اصلی امروز یعنی این به خاطر این SMSه یه موضوع انحرافی شد. درسته. موضوع امروز اینه که در ادامه هفته قبل که صنعت توریسم و رستورانداری و و اینا رو رفتیم توش و من قراره آه. به زودی برم در یه هتلی در اسمهان کار کنم. حالا حالا چقدر من دلم به, به حال خودم سوخت که همچین شما همچین فرصتی بدارین و من نمیتونم همراهتون باشم چرا نمیتونی شما میتونی داشته باشی؟ حالا من که دیدم خوبه تو رو معرفه میکنم آره بعد از من برو آره آره حتمش ولی خیلی کسی باید در ادامه رو تمیز کنه دیگه سپر <تصفح> <تصفح> دقیقاً. گذینه خوبیه خب <تصفح> شما که تشریف میبرین رستوران یا هتل از همه بیشتر چی میره تو حسابتون؟ همینطوری با هیچ فرضیاتی یعنی مخواهی بریمون کار میکنیم چه چیزی می رو ذهنی نگو اتفاقی که قبلا افتاده بر اساس مشاهدات گذشته و خاطرات گذشته نه اینکه که بری کار کنی رفتی غذا بخوری خب میری گرس به حال شما در قلبین میرین یه رستوران غذا اون قضا بخوریم دیگه ده بله بله بله. این چه چیز اون تجربه اذیت میکنه شما رو و بسیار نخوش آینده؟ من یه ذره مثلا اون هم گفتم وقتی میدم سرویس خوبی نمیگیرم در ازای پولی که پرداخت کردم خیلی مثلا روی مخم میده یا مثلا چه میدهم توی رستوران مثلا یه مرتجی که خیلی مثلا مهمه مهمه بهداشته مثلا قضاهاد <متحد> کاملا به من قطعا یادمه یه بار اومدم ستارخان یه قضایی بخورم دوژه سفارش دادم دقیقا یه نفر دیگه هم داشت می میخورم بود همون شد ظرف غذای اون که بردن دقیقا مشابهی که من تو زرف غذای اون <تصفيق> دقیقاً یعنی قشنگ یعنی همون چی، همون چینی همون دیگام چی، چی، هم. یعنی آبم بهش به من یعنی همون... و من هم ترسایی که کردم مثلا هیچ نخوردم ولی پول اون غذا هم حساب کردم اعتراض نکردی بگی این یکی از به... به... به... به... به... به... به... به... نشانهای اتکارهایی که به نشانهای اعتراض میکنم اینه که پول اون غذا رو میدم و نمیخورم مثلا بهشون میگم که خضایتون رو پولش رو پرداخت می نه. این اعتراضت خیلی خیلی یکاندیم نه یه ذری دل... دل... دوست دارم که حس شرمندگی بگیرن تا اینکه باهاشون باشم مجادله کنم تا اینکه. ولی حالت شاید اصلا افن یارو نفهمه که موضوع از چه قرار بوده سکرده شاید شما دیری مثلا نمیدونه نه بهش هم گفتم ولی خیلی بد بود یعنی دقیقا همون زفت باستم برگشت خیلی مباید تیر رستوران مثلا باستم نه من که سرباز بودم تو هم داریدی سربازی <تصفيق> <تصفيق> یه،, یه دونه قهوه بود تو میدون امام حسین من گهگوداری که میخواستم خودم مهمون کنم میرفتم اونجا دیزی میخوردم درسته و این, این محیط،, محیط این قهوه خیلی برای من جذاب بود از این قهره خونه های بود که نیمکت دارن از این دیگه مدر نشده بود و بعد کسایی که اونجا میشستن غذا میخوردن یعنی کاملا تیپیکال اون چیزی که حداقل نسل من از قهره خونه انتظار داشت یه هاشون متات بودن بعضی مثلا راننده های همون اطراف بودن یه میکس جالب بعد شما که نیم، رو نیمکت میشستی و این میزا جلو بودین نیمکت تا خطی به شکل دور اون محیط چرخیده بود خیلی جذاب بودین روابطی که برقرار میشد و صحبتهایی که اینا حالا گفتی تو همون ظرف آورد زمانی که یه نفر غذاش تموم میشد این سبزی خوردن اینو حالا مثلا نصفه بود دیگه میبرد جلوی رود یعنی اون پشتم نمی برد همین ور یخشال اون کسی که حالا یه دونه گارسون هم داشت که یه جوونی بود اونجا سرو می کرد اونم فکر هم بود. <تصفيق> همین برای حقشال این سبزی خوردن این نسفر رو یه چند تا میزش روش با همون دست و میومد میزش رو میزد و من خیلی دوست داشتم این حرکت یعنی اصلا علی خوبتی این به یه جورایی این شد صداقت یه جورایی دیگه تو این با اون فرید دادن حس نمیکنه نه فرید نبود این اصلا کرکتر اونجا بود دقیقا دیگه همونو دارم میخواهم میگم اون ذات اونجا شد یعنی تو میپذیدی ا <تصفيق> یه چیزی که خیلی ولی وقتی مثلا میبره و دوباره میاری احساس می که مثلا اون فکری که تو نطرفه که تو و از این بعدش میاد که آره من یه چیزی رو نفهمیدی. شما که داره اونجا از خود خدام حالا یه چیزی که حالا شاید منم واسه نرسونم من بزنم همین کارو کنم. چون یه چیزی که معمولاً حالا آدم یه دو چیزی بعدش خیلی که ریخته بشه دو ولی خب هلی... دست میخوره دیگه مثلا شما آره. یه کروفچر رو برمی‌ذاری بعد وسط رو پچیمون می‌شین می‌ذارید اون یکی رو برمی‌ذاری یه همچین اتفاقی نمی‌افته ولی خب آره, آره دقی دقیقاً آره موافقم, موافقم. دی دیگه چی حالا از بهت یعنی یه مورد خاصیه خاطری خاصی از رستوران اینکه که گفتی خیلی بامزه بود دیگه دیگه والا چیزی که خیلی بگم من میگم بیشتر اون رستوران‌هایی می‌بینیم یا مثلا از اون فروشندهایی هم که مثلا می‌ری تو و اصلا و ابداً یعنی مثلا به روشون سفارش نمی‌کنن که مشتری وارد شده از اونام خیلی بدن میاد یعنی به نظرم خیلی معمولی حالتی کسل فقط سرش پایینه فقط که دقیق رو سفارش تو بدی به یعنی خدا یعنی میگم همیشه خودم میذارم جای اون میگم این کاش مثلا من صاحب این رستوران بودم همین آدم در جا اخراجش میکنم چون به نظر مشتری‌ها بعد جلوپاش بلند شیکی می‌ذارم مثلا احترام قائل بشی و اصلا لبت خندون باشه اصلا ولندم نشی لبت خندون باشه ام. شرخت نباشی تو برحال حال پول میگیری اون کار رو انتخاب کردی که انجام بدی اگه دوست نداری احساس میکنی پوشنگی در چند تو نیست خب اوکی میتونی بدی یه شغل دیگر انتخاب کنی ام. ولی اینکه که یا خیلی هاشون از آدم بعد یه چیز دیگه هم که خیلی بدم نیات این فرس مخصوصا خیلی مده که مثلا شما وقتی میید اونجا سفارش یه شماره بهتون میدن بعد وقتی که حاضر میشه شماره رو اعلام میکنن واس خودت غذات رو بگیری. از اینم خیلی بد میاد که چی بعد به نظر همشه من فکر کنم خدای این سیستم چجوری باشه که هم کارآمد باشه هم اینکه این آدم نیازموشه خودش بر اون غذا رو یعنی یه نفر غذا رو باید بیاره برات؟ آره غذا رو واسه چی بیاره؟ خیلی بده که این آدم یاد اونجا دوباره ایلا ای، یه جوری احساس می‌کنه این ماشین میدیم کردی که فقط میگن زودتر بیا بخور پولتو بده برو زودتر بیا بخور رو بده برو آخه آه. این چیز جالبیه به خاطر اینکه تو اصلا میدونی چیه فست فود یعنی اینکه شما میری اونجا مثلا که سفارش میدی همزمان با اینکه پولتو میدی هم این طرف آماده است یعنی به یه آه. فاصله کوچایاست نیازی به این نمیشه که شما بری سر میز بشینی و صداد بزنن دوباره بری اونجا غذاتو برداری به خاطر همین عامل انسانی که غذا رو بیاره رو میز بذاره تو این طراحی از ابتدا در فلسفه و روح فسبود بود نبوده دایغان اوکی ولی خب الان فسیده ما فاست فود میشیم واقعا مثلا شما تو پنج میمین چلیق رساله 5 دلار ملزلی یه معمولی این, اون خب. این دیگه اونشو نیده دیگه این کسی که این فاست وارد کرده کانسپتشو اون تیکه ماجره رو نیده در فند یه چیزی که من یادم افتاد یه رستوران تنهایی تنهای تنها و حال کردم که لحظه برم رستوران و خود به خودم یه حالی داشتم غذا میخوردم یه نگاه چون کنم مثلا ایم آدم های اون امیت های اطراف جوری به من نگاه میکنم که مثلا ایم کنم نمیدونم مثلا دیپ هم باز بکنیم <تصفح> آدم چی شده مثلا من شکست عشقی خوردم سکی یه آدم مثلا خیلی واسهشون غریب بود که آدم میگید یه آدم تنها اومده داره غذا کجا بود؟ غزمین قز... بعد بز... از این دستورانه های مثلا سوپر خانوادگی و اینا آره از اینا که مثلا از اینا بیشتر اون فضا اونطوری بود که مثلا معمولا با دوستاشو میومدن یا مثلا یا دوست دختراشون یا دوست پسراشون چه میدونم یا مثلا ولی چه تک نبود فضا آره آره مثلا و بعد این مثلا همه میذاشن مثلا میذ تک نفر فضا مثلا دیگه تک نه میفهمس که چهار ساعتی بعد داشتن غذا میخوردم یه نه من <تصحیح> که واقعا به خودم موندم این من 2 ساعت شکست عاطفی شدم 5 ساعت قیافاشون خیلی خیلی جذاب بود به نگاه میکنم. ولی این مشکل داده چه تنها چه چند نفری که میدیی تو بعضی از رستوران ها هست که حزار نگاه میکنن خیلی نگاه میکنن میز تو آره به نظرم بخشی از وجود اون رستوران ها هست من فکر میکنم فلسفه رستوران اینه که خب بیا با هم دیگه بریم مثلا صحبت کنیم لابلش هم یه قضایی میخوریم ولی کنم ما ایرانی ها یاد گرفیم توی که خب بیا بایدیم ما بعد قضایی رو بخوریم تونتون بیاییم بیرون یعنی اصلا به معاشرت گفتگو فکر نمی اصلا فقط میکنم این یه قضایی رو بکنیم یعنی به فکر این فکر میکنم ولی قضایی ها بیشتر رستوران و محل اینو گفتگو و حرف میدونن مذاکره میدونن و هم خب. یه قضایی میخورن نمیدونم فقط اونجا هم رستوران با مدلای های مختلفه یعنی یه تیفه دیگه یه سری رستوران ست... فانشنش فانشن خوردنه ها. یه رستوران هم هست که فانشنش بیشتر اون معاشرت است دقیقا،, دقیقا مثلا یه رستوران یه رستورانایی هست و این بازار تهران که شما میری پنج نفر بالای میزد وایستادن و منتظرن که شما غذات بهش تموم بشه و بلند بشید بذار ولی واقعا نمیشه گفت اون رستوران حالا علاوه بر اون کیفیت غذایی که داره یا اون انرژی که داره شاید اصلا همون آدمایی که وای میستن بالا سرت بخشی از اون تجربه رو ایجاد میکنن به اون رستوران شاید نشه خورده گرفتش که این ولی یه رستورانی شما میری که مثلا خیلی یه جای دورافتاده است فضای نسبتاً بزرگتری داره و اصلا شما رفتی که دو ساعت اونجا یه جلسه ای داشته باشی یا یه نسبتا خصوصی تری بکنی یه همچین جایی وقتی میبینی که میز مثلا سه تا میزون برتر هر دفعه برمیگردی سه تا مثلا جفت چشم روی میزت نشسته اینه ذره اذیت میکنه آره آره راست میاره گونه های مختلفی داره و باید گونه مناسب خودش آدم انتخاب کنه حالا شما اگه مثلا حالا, که شما حالا هوای رستوران زدن و اینا به سر داری چجور تجربه میخوایی آ طبعا من حد ندس همین روز که میمردم یه میوه فروشی با خودم دقیقا همینا گفتم اگه یه روزی من میوه فروشی بزنم مطمئن هستم یعنی این تو خودم می‌بینم یه فروشی که متفاوتتر از همین میوه و تجربی خلق می‌کنم واسه اون مشتریم که برای چه یعنی چجوریه مثلا یعنی مثلا خیلی مثلا همش نگام می‌کنم اینا خدای من اینا چقدر تکیف می‌شینن دیگر رو پیکر میچینن مغازه هاشون چقدر سنتی دارن نگاه میکنن این حتما باید آینه باشه حتما باید میوه اینطوری باشن یعنی حتی به ف... به این فکر نمیکنن که آقا جور دیگه ای باشه جوری بهتره یعنی همش اون چیزی که فکر میکنن باید همش باشه اجرا میکنن یعنی چون باید میره فروشی اینکه این هم... که الان شد انتقاد این وضع موجود ایدهال شما چیه؟ شما شما چه کار میکننی که این جذاب بشه من قطعا م... چون مثلا تو این کارم هستیم دیگه ما حتی مثلا تو این کار هستیم خیلی مثلا مهمه من ایده ایدار که داشتم واسه یه رستوران این بود که وقتش آشپزخونه باشه و آشپزخونه کاملا شیشه‌ای باشه امه. و دو تا تادور این یه رستوران بساز کنیم وقتش یه دونه استوانه گرفت بشه، ای که آشپزخونه دو باشه شیشه‌ای تو دور و یکم باشن که کاملا ببینن مشتریان که چجوری این غذاشون داره آماده میشه یعنی از صفر تا صدشو ببینن روی بهداشت به شدت تاکی به داشتم و این شی شده بودم و این شفاف بودن چیزی بود که من به اونا ارائه بدم مم. به این فکر بودم خیلی به نظرم مهمه سالم یک سالموز در بقی خیلی مهم میواسه من و خیلی ناراحتم از اینکه خیلی کمتر از رستوران برم هر جایی نمیشه رستوران رستوراندم غذاها معلوم نیست چیه خیلی بام دقیقا از قضیه بهداشت بهداشته سلامته چون فکر می کنم مثلا اصلی ترین بیس این کاره و خیلی ما اصلا توجه نمی کنیم فقط از دور شنیدن که مثلا رسیمان داری پنجا پنجا سوده پنجا پنجا سوده آقا کجا پنجا پنجا سوده شما قسمیه توی کار اصلا اینقدر گرستاری ها داره اینقدر مشقت داره اینقدر دردستان داره که اصلا یه موقعی اصلا زده بشه از این کار. فقط از دور نیست، صدای به از دور خوشه. از دور آره در که. آره. با 50 سود از واقعا نداره، واقعا نداره 50 پنج اگه بخوای واقعاً اون کیفیتی که میگم اون چیزا نه والا بدی واقعاً. حتما او با اون کیفیتی, کیفیتی که ارائه میدن 50 50 سود دیگه. دقیقاً. با اون کیفیتی, دقیقاً. کیفیتی که الان هست. درسته، دقیقاً, دقیقاً, دقیقا خیلی کیفیت داره، خیلی کیفیت نمیدونم رستوران خوب داره قزنی؟ وصفه هست ولی خب حقیقتا من خیلی اونطوری که مثلا نمونه است نمی‌دونم اقوالی استایس هست هستن اسم درک کردن یه جورای دیگه از دوره فقط اسم شدن میگه من دواره آره دواره ولی دواره. مثلا یه جایی هستش که شما واقعا هفته یا حتی ماهی یه بار به خاطر اینکه بری تو اون رستوران و از غذا و محیط و نمیدونم مخاطبینش حزار کل اون تجربه رو بخوای تکرار کنی همچین جایی وجود داره من چیزی واسه همین چیزی نبوده حقیقتا یعنی رستورانی نبوده که شاید پیداش می‌کردم یعنی شاید تو قازوین باشم من نرفته باشم تا حالا ولی اونایی که رفتم اینطوری نبودن که حالا مثلا بگم چقدر باحال بود یه یه دیگه پس بدی من مثلا الان که داری با من حرف زنی بگی مثلا آیه سخاواتی اومدی قازوین حتما اون حتماً رستوران رو, رو, رو, رو آره آره, آره،, آره، حال میکنیم. آره. مثلا همینجای وجودنه مثلا, مثلاً یه رستورانی تو تهران چندین تجربه داشتم اونم رستوران نبود یعنی به سرا بود که خدا یا آدستش یادم رفته خیلی شلوک سنتی سنتیه بعد وقتی اونجا به اونجا به اونجا دقیقا دقیقا دستگاه که بهتون میده ها چه بوغ میزنه اون زمانی که من رفتم اینو نمیداد حالا شاید جدید آره الان جدیده میگو یه نفر گذاشته اونجا تو انقدر شلوغ شده یه نفر اون بیرون نشسته شما نمیدم دو اجابه هم بهش میده میده دیگه اندازه چه کف دسته یه وسیله سیاهه که مثلا تا شاید پنج دومتری اونجا کار میکنه. هر <متصفيق> وقت نوبتتون بشه می‌ترید صداش درو و شما اونو رو تحویل می‌دیم تو. اینجا واقعا تجربه فوق‌العاده‌ای داشت یعنی از سر کردن از گارسون‌ها اد ق... بعد ترش... یعنی اونقدر ترشی یعنی اون حدی که ترشی‌های اونجا خوب بودن خود دیزیه خوب نبود آره اونجا خیلی خوبه آره فقط به خاطر ترشی‌ش هم باشه واقعا یه بار دیگه میرم خیلی مفت خیلی خوب بود, خیلی خوب بود. یا حتی مثلا اینکه مثلا پسا با چمال احترام یکی از بچه هایی که با ما اومده بود گوشتشو شدداد بردم مثلش کوبیدن تضیمش کرده بودن گوشتی که کوبی شد <تصفيق> اصلا خیلی باش عجیب و رویایی بود آره آره, آره، اونجا بود. خیلی خوبه و آره سااح هم یه پیننددی بود و بعدم هم اصلا همه چیش به همه چیش میخوره یعنی د دقیقه اون اون سنتی بودنش خارج از عرف نیست سیک نمی مثلا یه تصویر خیلی ظاهری از سنتی به گذاشتن و... پس حتی نقاشی روی دیوار چقدر خوب بود خدا یعنی نگاه, نگاه میکرد کرد چقدر میتونه یه آدم سلیقه داشته باشه مثلا من یه دونه کتاب آشپزی کنم مثلا من دیدم از نجف دریابندری مصطفی آشپزی. وقتی که من اینو نگاه میکنم میگم خدایا این آدم چجوری به مغز رسیده که این کتابو اینطوری بدونه یه دونه نقص یعنی آدم برق میزنه یه دونه نقص پیدا نمیکنه از این کتاب اون دستانم همونطوری بود یعنی تو نگاه میکنی و میدید خدا یک کاش چیزی نقص داشته شما این نقصه رو بدونم پیدا کنم همه چی مگه میشه ما بچه بودیم هم خوب بود غ... یعنی من یادم خیلی خاطره خوبی داشتیم با جوجه بروستت آره آره دقیقا اه... دقیقا حالا نمیدونم الان الانم مثلا تا همین چند سال پیش من رفتم اونجا و خوردم غذاشو شاید به خاطر اینکه دیگه نمیدونم به خاطر سن دیگه اون میزان از قاطر و لذت رو برای من ایجاد نمی منم من ولی اون موقع یه جم... چیزی بود که مثلا ما هر چند وقتی یا باید میرفتیم یا میگرفتیم خونه میخوردیم این خیلی تجربه خوی بود میپرد خون آره، آره. نمیدونم این خود اون مرغ سخاری که میداد یه مقداری زیادی چه جوری فرق میکنه با این مرغ سخاری که امروزی ما الان داریم ایران. منم اصلا نمیدونم واقعا شاید کیفیتش فرق شده منم قدیما یادم مثلا سال 86 هشتا هست که می خیلی زیاد می اصلا من دو تا لبرسته داری مثلا یک گل لبرسته بای قدیما یکی بری هسته یکی هم تو خیابون نمیدونم پادگانه چی اونجه هاست <متحد> قدیما ها خیلی بیشتر به همین چست بید شاید مثلا شاید یک سال پیش اونم تقریباً زیاد من بودم اصلا تجربی خوبی بسن نمو. اصلا نمون یعنی مثلا مزه جوجه هم یه اصلا سیهون نبود بعد اون موقع آره. دیسای فلزی داشت یادم توی آره. دیسای دیسای استیل توی دیسای استیلون سرو می‌کرد بعد چون شلوغ بود همیشه یه عده منتظر بودن که یه عده دیگه بلنش هم میزا خوردن این... الان همونطوریه دقیقاً آره این انرژی خیلی جالب بود ام. و این آدمی که اینا رو می آورد مثلا 20 تا دیسو میچید رو دستش دیس و اره اینجوری هم نبود که شماره اینا صدا کنه این آدمی داره آره آره. چون دو طبقم بود و آره. مثلا می شما شماره 71 بعد بعد دست تو بلند میکردی میفهمید کدوم میزی نمیدونم همه اینا حس خوبی میذاشتو شدم دقیقاً, دقیقاً داریم نوستالژی میزنیم می ما همیشه همینطوری هستی که به نظرم یه جاهای ما تیم سنتو مدرنیتو گیر کردیم میگه یه جاهایی هم اون ورو میخوایم هم این میخایم و نمیتونیم حتمی جذاب باشیم شما یه زمانی مدرن يزمان... شدیم میتونیم بگیم ما مدرن شدیم چه مدرن <متصف> دید؟ دید؟ به اصطلاح مدرن شدیم ولی ام. فکر نمی کنم نه سنتی اصیلمون هستیم نه مدرن خیلی خوب یعنی داریم این وسط بالبال میزنیم یه ذره از <متصف> داریم یه ذره از اونو داریم <متصفح> به خاطر جذاب میتونه باشه یه جلسه راجع به مدرنیته صحبت کنیم آره ما... یک از دورهای و جدی نیست چرا و اگر فکر, فکر میکنم شما توانه این رو که سخت رو جذابش کنیم خیلی مهمین پارمونی شما برم خب پس داری آه. میری سربازی رو آره نامم هم اومد کجا افتادم کجا <تصفيق> به پنج <سنجه> کنار به به به خیلی هم خیلی هم خیلی بله خوب. فقط نمیدونم چرا به هر کی میگم اولین جمله که مثلا کلمه ای که میگه این ای داد ای داد. نه دارم. نه اصلا اون چیزا دارم اینا. نه اون مال حال قدیما بوده میری حالا اون من با قطار باید بری با اتوبوس نه با از این خبران است حالا وقتی حد... پذیرفتم عدیسا خبتی برم این راه دیگه همه چیزی پذیرفتم دیگه آگه نمی‌خواستم نردم نمی‌رفتم ولی این صدق خیلی شهر جذابه یعنی اصلا درده من خودم هم رفتم واقعا خیلی خوبه اره شهر خیلی چرا ما تماشیرنده از کرمان از... از... نداریم یعنی یا از اصفهانن 90 درصد بله در استان خیلی حالم بهتون زنگ میزنم چی از تهران هم خیلی کم بده از تهران هم که اصلا هیچکی اصلا نمیدونم قزوین واقعا چیه آره بین اصفهان و قزوین فکر کنم تاریخی شده واقعا نمیدونم چرا اینطوری شده. آره یعنی من گیر کردم در اون داستان انتقاد پای تخت صفه وی صفه دقیقا دقیقا بسیار خوب نمیدونه دیگه، چیز ای به نظرت میرسه؟ آه چیز دیگه ای که نباله نمیدونم بگم کنم نهوی سر جنب. یه سوال می‌خواستم از از, از پر. یه مطلبی خونم ازت از از به عنوان بری بری نمیتوانم نمیتوانم بله. اون مطلبا تو من خیلی دوست داشتم. خب یه جایی مثلا نوشته بودی به این مثلا بگین که آدم بره غذای ستاله بخوره ورزش بکنه. میره هر متخصص تغذیه رو گوش میده درسته؟ بله. من خوام ببینم مرز این یادگیری و این علم زدی کجاست؟ در حال اون آدمی که می‌خواد بده ورزش کنه و غذای ستاله بخوره. به حال باید از یه جایی یه چیزی یاد بگیره و یه دونه اجرا بکنه. می‌خوام ببینم مرز این علم زدی و این یادگیری کجاست؟ خیلی باتم دقدر هستیم اتفاقا چون که توی فکرم سه تا پادکست قبلی بود که این دوستمون از یزد اگه اشتباه نکنم امیر محمد در مورد یادگیری میپرسید روی مطلبی دارم کار میکنم خیلی خیلی مفصله یعنی شاید چندین برابر نیاز به تئوری پردازی نسبت به اون داستان علمزدگی داشته باشه مرزش خیلی باریکه یعنی همین که تشخیص دادی مرز خیلی ظریفی داره و نیاز به اینه که حالا چند تا چیز رو به سلام بیس تئوریش رو فرضیاتش رو بچینیم و بر روی اون بگیم که این مرز کجا قابل تشخیصه ولی خیلی دارم روش کار میکنم به خاطر اینکه یکی از علایق شخصی سدیمه که دارم روش کار میکنم دقیقا این یه دغدغه منه که این مثلا دقیقا با این حسات موافقم آدمی که میخواد لاغر بشه نیازی نداره که اصلا نمیدونم رو دنبال کنه فقط اگر مثلا روی تعهد داشته باشه که هر روز یک ساعت بره به دو مطمئن که لاغر میشه یعنی اون زمانی که اونو مینوشتم می نوشتم خیلی برداشت سطحی نسبت به این ماجرا داشتم یعنی کسی که این مطلبو میخونه حس میکنه که خب مثلا علی سخاوتی داره این روی کرده به زندگی رو انتقاد میکنه یا حتی میکوبه و بعد میگه که چاره کار اینجاست و واقعا هم شاید اون موقع اینجوری فکر میکردم من تو الان فهمیدم که به این سادگی هم نیست یعنی اون میز اون حتی سطحی نگاه کردن و ساده سازی که شما در اون مطلب میبینی الان برای خود من هم قابل قبول نیست بخاطر همین نیاز به یه ورژن بعدی داره که شاید یه ذره با عمق بیشتری به این حالا مسئله که نمیشه گفت به این به این پدیده نگاه بشه دقیقا در یه نفته آخر پیشنهادم بدم دیگه خداحافظی کنم حتما یه جا توی یکی از این فاتکسته گفتین یه تکاب میخوامنیم سی دلیل به که واقعا بعد به این دانشون منظرم حتما بعد اینو بنوی به خاله دارم یعنیم تو آدم ها اینقدر فتی فکر که با یه کتاب امکان باید خیلی دارن را رو بزنن ببینید باید... صاحب اون کتابو که هم نوشته هم نوشته سالیان سال نه تنها یک سهر بلکه سیستم‌های خیلی بزرگی نوشتنش ازش نه نه صحبه. اون اصلا رویکرد رو نمیگم، رویکرد علی اخوابتی رو میگم، رویکردی که علی اخوابتی می‌نویسه. اون تو توی کتاب امکان یه رویکرد جایی به ما یاد داده. که مثلا وقتی اگر شما رویکرد امکان‌محوری رو بفهمی و بخوای در زندگیت به کار ببندی، دیگه مهم نیستش که موضوعش دانشگاه نرفتن، دانشگاه رفتن رستوران زدن رستوران نرفتن گیاه خاریه اونش خیلی مهم نیست مهم اینه که شما اون،, اون روح و اون فلسفه امکان رو بگیری اگه اینو بگیری که دیگه اصلا خیلی به داستان دیگه این نیاز نداری ولی اگر اینو نگیری و با همون نگرش قبلی تو ماجره نگاه کنی من اگه ده تا کتاب دیگم بنویسم و به همیدنو چیزای مویسم یعنی رو نویسم به این آدم بوده بود که مثلا او باید کتاب امکان خوندن اینقدر سیید نگرششون عوض نشه که حتما نبرده دانشه علیس خوابت می یاد دارم با ممکناصل اشتباه کنه. حتا هم اشتباه میکنه و نوشته هاش هم لح ل میدونم با خوندن کتاب نگرششون عوض بشه و این این کامنت ها میدیدم آخه توی کامنت ها من می دیم اون به معنی عوض شدن نگرش نیست اه. اصلا معناش این نیست وقتی یه نفر کامنت میده که من با خوندن این کتاب یه همچین تصمیمی گرفتم اینا اصلا اینا رو ملاک معنی خواستی نداره اینا <تصفح> سکون باد حواست هیچ معنی هر وقت به اسطلاح منیفستیشن هر وقت تبلور و ظهور این کامنت رو شما در زندگی اون آدم دیدی بعد میتونی بگی که این کتاب این فیلم زندگی این آدم رو تغییر داد ولی اون اون ایمپالس، اون هیجانی که اون لحظه شما حالا از یه چه یه چیزی که مثلا حالا میاد رادیکال یه چیزی رو نقد میکنه یا زیر سوال میبره یا رد میکنه اون هیجانی که اون لحظه به خیلی از دست میده اولا خیلی زود گذره و ثانیان هیچ معنی خاصی نداره دقیقا نهیم، گرفتم به قول مارا توی شمیدن که دیدن <تصفح> آره، آره خب ما که خواهش میکنم، خواهش میکنم خوشبگذره سربازی. قربان شما من ممنون جای شما خالی. شما هم هتل داری بدین، اسلام قرارداد بدین، هتل سرای سرای عطاره. حالا امیدوارم خ... آشنای ما که قراره پارتی بازی کنه زنگ بزنه ببینیم چیکار باید بکنیم برای سرای. ولی حتما اگه راست هتل داری حتما بگین که تو زارتی که دوز کشیده شده یه دوز سر زنگون تخت دیگه. شاید هم بگم این کار بکنن مخصوصا میدونم خداحافظ شما شما خداحافظ خداحافظ علی مراد الو سلام آقای سخابتی سلام آقای مراد خوبستی ممنون آقای مراد ما این پاچستمون رو میخوایم اسمشو عوض کنیم چی میخواییم بذاریم بذاریم با علی مراد گهب و علیه مورد گهب و علیه به صدای ماشین صدا که خیلی اذیت نمیکنه صدای ماشین میاد ببین اون دفعه هم که زنی زده بودی خیلی تو چرا تو سیابون زنگ زنی به ما نه من دانشگاه زدم دانشگاه خلوته خوب صدا نداره بعد خب چیز بود توی صف بودم بعد خب الان باید می بیرون بعد بیام به کلاس هم برسم اوکی. آره الان اومدم. فرصت استفاده می‌کنید. آره بعد هی توی مسیر هی مثلا روی جی پی اس که من زنگ زنی زنی و چک کنین می‌بینین که ای مثلا داشته این مسیر رو طی میکرده. دیگه ما اونقدر اینتلیجنسمون قوی نیست. نیست. نه ما در این حد اطلاعات جاموری نمیکنیم از ها ما فقط می دونیم که 95 درصد تماسیرندوها از اسفهان بعد 85 درصدشون هم علی مرادن. نه <تصحنت> <تصحنت> <من تصحنت> <جمسه> می‌خواستم این حرفو زنگ نزنم، خب؟ بعد هفته پیشه مسیجی برای من اومد نوشته بود من از اینکه شما با پادکست علی سخیواتی تماس میگیرید و حرفای خوب میزنید متشکرم. واقعا؟ آره. مسیجی از کجا از... یعنی روی تو اینترنت اومد برات یا تو آره رو موبایل هم باز هیچ دیگه تصمیرافتم این هفته هم زحیم بزنم. بعد فهمیدین اون چی بوده اون آره میشتوسیدش آقای کامران کامران پولاد پولاد صادق آره آره کامران, آره شو شو کامران که مامانشم فکر کنم بشنسیم و،, و اهل استحانم هسته آره اونم ایزن اونم اهل استحانه من،, من فکر کنم شما استحانی ها میخواییم یه جوری پادکست منو رو کنیم آقای اتا خواهی دیگه توخمه توحیده که نمونه ببین همون جوری که شما پایتخت رو از قزبینی ها گرشیم چی؟ <تصفح> من فکر کنم یه همچین جریانی هم در نه همچین جریانی نیست ما خیلی آدمای نودوستی هستیم و میخوایم پادکست شما از رونق نیفته خیلی ممنونم خیلی آره و می‌خوام که این کار هر بیشتر بهره بشه ما هی فکر می‌کنیم که در مورد چه موضوعی صحبت کنیم که خیلی صحبتهای خوبی انجام بشه موضوع این هفته میدین چیه نه رستورانه رستوران آره من یه موضوع خوب داشتم خب بگو کتاب اه... کتاب اینقدر نه کلی سوال دارم اوکی. آره شما آخرین کتابی که خوندین چی بوده آخرین کتاب ببین من 5 6 تا کتاب باز دارم که دارم میخونم خب 5 6 تا کتابم خب اخیراً تموم کردم اصلا آخری که تموم کردی یکی شاله یه کتاب خوندم به نام اه توریست توریست؟ آه. آره چه بود؟ انگلیسی انگلیسی خوب یه،, یه ذره برامون بگیند یه خلاصه پرنیسانی این ازش بگید خلاصی این یه کتاب تقریبا میشه گفت جامعه شناسی خوب و به پدیده یه توریست میپردازه که چه مشخصات و چه تعریفی داره آها و اصولا توریست از کجا اومده چه ابعادی داره چه جوری رو زندگی ما اثر گذاشته آها چه جالب. و بعدم ارتباطش به مدرنیته و مدرنیسم خب اوکی سوالی قبل از اینکه این کتاب این بخونین فکر میکردین که چی به شما میده یعنی با, با چه با چه انتظاری رفتید سراغ کتاب قبل از اینکه این کتاب بخونم به خاطر اینکه از طریق یک کتاب دیگه آشنا شده بودم باها. خب و اه، در حقیقت یه موضوعی در اون کتاب بود که اون موضوع هم موضوع اصالت بود خب و من اون چیزی که در اون کتاب خونده بودم رو ب... ب... یعنی نیاز داشتم که برام آن بشه. این کتابی که از رفرنس‌های اون بود و اینو که می‌خوندم انتظار داشتم اون بر اون موضوع بر روشن تر بشه. آره، خیلی جالب. به هم شد به هم دیگه دیگه‌ای باز شد. خب چقدر خوب؟ حالا یه ساله دیگه شما کلیاً توی زندگیتون از کتاب کیا گرفتی؟ از کتاب خوندن بیشتر حالا؟ همه چیز؟ من حقیق دارم بعد از مادرم و حالا نیروهای ناشناخته طبیعت عبر و باد و و خرشید و فلک خوب. و بعدش هم شانس و اقبال از کتابه و حالا یه چند تا مثال بزنی مثلا چیایی که الان دارین و به چه نحوی از کتاب دارین این هم خیلی مهمه حالا شما میگین که من مثلا اخلاق ما از کتاب دارم، رفتار ما از کتاب دارم، سواد از کتاب دارم. به چه نحوه یه مثال بزنین که مثلا فعلا کتاب این گونه روی من این تاثیری گذاشت. فعلا دو تا سوال شدیم که گفتی. آره دیگه. یعنی یکی بگین که چه تاثیری گذاشت و این که بگین چه گونه چه کتابی چه این تاثیری گذاشت؟ دیگه برام سخته که یه کتاب خاصو بگم چه تاثیری گذاشت. چون من اصولا دم. من هوش هیجانیم خیلی کمه اتفاقا اینو داشتم به یکی دوستان میگفتم به خاطر همین وقتی کتاب می خونم که برام تر... اصولا خب برای تفسیر گذار نباشه نمی خونم رو دلش میکنم ادامه نمیدم ولی کتابی رو کتابایی که تام میخوان معمولا برام تفسیر گذاره و این تاثیرش زیاده ها. و خودش رو سریع نشون میده یعنی اکثر کارهایی که میکنم مثلا شمال رفتن و زمین خریدانم در شمال حاصل خوندن چندتا کتاب بود آها. و بعدم این اثرات از بین میره یعنی اثرات مونده کاری نیست. خیلی میره. پایدار نیستن. نه زیاد پایدار نیست به خاطر اون همون هوش هیجانیه. من به خاطر کتاب خوندن خونه عوض میکنم نمیدونم زمین می خرم. حالا نمیگم ازدواج میکنم امکان داره رابطه‌مون خراب شه با مادر بچه‌ها ولی خیلی کارا اینجوری میکنم یعنی کتاب رو من خیلی خیلی تاثیر داده ولی تاثیرش هم پایدار نیست. حالا اگه چند کتاب خ... خ... بکین ما بخونیم چی میگیم یه کتابی که فکر میخونیم به درد همه میخوره یعنی رو همه میتونه تأثیر بذاره کتابی مثلا شد... که رو همه تأثیر بذاره آره اصلا یه کتابی که اگه نخونده باشیم از کفمون رفته باشه اصلا خب خب که وجود نداره خب نه درصد که وجود نداره با یه میزان بالایی مثلا من خودم بخوام بگم شازده کوچولو رو بگم بگم شازده کوچولی کتابی که اگه دیگه مجبور باشیم یه کتابی توصیه کنیم و اونو بگم بگیم بگم آقا این مثلا خیلی حوزه مخاطبش وسیعه و خیلی هم چیزی که به ما میده و تأثیری که میذاره خیلی بالاست یه همچین کتابایی که اگه بخوایم یه سیستم آموزشی داشته باشیم مثلا مردم رو زور کنیم که فلان کتاب میدی؟ اگه بخوایم زور بکنیم که شاید بهتر باشه زور بکنیم هیچ کتابی نکنه من اگه بخوایم زور بکنم یا همچین زوری میکردم اون تو از اونجایی که اشولا با زور کردم موافق نیستم و شاید اون ارزشی که کتاب و کلمات برای من دارن برای خیلی نداشته باشن به خاطر همین خیلی نسبیه واقعا من فکر نمیکنم که جماعت زیادی باشن که از نخوندن یک کتاب چیز خیلی بزرگی رو از دست, از دست داده باشن. واقعاً نمی‌دونم چین چه چیزی باشه. خب من موضوع گپ هم تموم شد. شما سوالی در این مورد از من ندارید؟ خب ولی شما حتماً یک کتابی داری که آه شاذ به رو گفتی. آره. آخرین کتابی که خودت خوندی چی بوده؟ پروس چگونه میتواند زندگی شما رو دگرگون کند. اه خوندی اینو؟ آره آخرین کتابم بوده. چجوری هاشون شدی با این کتاب؟ اه... اینو یکی از بچه ها داره خود مارسل پروشت رو میخونه و هی رو فیسبوکش ازش تیکه میذاش یکی هم که آقای ملکیان یه سری کتاب معرفی کردن که موجب مثلا بهبود سلامت روانی آدم میشه یعنی کتاب که مثلا به لحاظ عمومی کیفیت زندگی آدم میبره بالا حالا عنوان دقیق اون عبارت آقای ملکیان یادم نیست بعد این کتاب جزوش بشه بود آخه منم خوندن این کتاب رو یه ماه تموم کردم آه. خیلی جالب شد برام گفتم آخه من کتابو خیلی جالبه خود کتابو که تا خوندن فردا به این نفر کادو دادم یه نظری نفر... ترجمه شده چی ترجمه شده آره ترجمه شده ترجمه‌اش یه جایی بده ولی در کل خوبه بعد دو... دو تا دیگه هم تا حالا خردم کادو دادم یعنی تا حالا من سه تا از این کتاب خردم و کادو دادم آره کتابی نظیره خیلی کتاب. خیلی خوبه و یه کتاب داره هنر سیر و سفر بعدی میخوام بخونم اونو من سالها پیش آ خوب بود حالیه اونم خیلی آره. خوبه یه کتاب دیگه هم داره انگلیسیه به نام A Non Believers Guide to Use of Religion یعنی راهنمای نا ناباوران برای استفاده بهم. از دین آره اون اون کتابیشو نخوندم ولی اصولاً این نویسنده که زاییم رجوعی صحبت میکنیم آقای Alain de Botton بله. خیلی آدم خیلی آدم در حقیقت چند و مشاهدگر خیلی خوبیه. در کتابی داره به نام یک هفته در فرودگاه که آه. یک هفته فرودگاه هیتروی لندن که یه فرودگاه اینترنشنال خیلی بزرگه از این دعوت میکنه که یه هفته اقامت بکنه در اونجا شبانه روز و مشاهداتش رو بنویسه در قالب یه چساب و شما اصلاً شش در میاد که یه آدم چقدر چیزی میتونه ببینه چه چیزایی دیده آره این اسم کتابه هست یک هفته در سرودگاه یک کتاب دیگه داره به نام فکر کنم تلسیه ها و شیرینی های کار اگر درست هر جمعش بکنم اون, اون کتابش هم بی که در دکشنای مختلف در, در کشورهای مختلف میره و کسایی که مشاغل مختلف رو دارن اینا رو مشاهده میکنه و اصولا اصلا تمشه که حاصل observationش رو می این کتاب این که پروست چگونه می‌تواند زندگی شما رو تغییر بدهد هم همینه یعنی این نشسته اون کتاب پروست رو خونده در جانم کتاب پروست رو خونده آره، کتاب پروست که در جستجوی زمانه از دست رفته است و کمتر کسی دیگه در زمان امروز حوصله میکنه که همون آره، رو به این بزرگی، سیدی مطور رو بخونه رو و واقعا شما وقتی این کتاب آقای دبوتون رو میخونی حس میکنی که نه تنها اون کتاب پروست رو خوندی بله. و فهمیدی و بلکه اصلا با پروست شما چند هفته زندگی کرده و این بی نذیره. یعنی یکی از شاه که من به نظر من واقعا زندگی آدم و یکم دگرگون میکنه این کتاب اگه با تحمل و آره با دقت بخونی خیلی درس های جالبی داره مثلا من اتفاقی که برام افتاد توی فصل اولش در مورد دیدن زیبایی های ساده صحبت میکنه من بعد این کتاب بودوجه شدم شیر هموم خونم چقدر خوشگله بله. و الان دیگه مثلا این شیر رو یه یجور دیگه نگاه میکنم یا توی اتوبوس الان نگاه میکنم چقدر این قیافه های مردم قشنگه. ولی نمیدیدم مثلا این کتاب من کور بودم منو شفا داده. یه همچین هم. حالی یا توی اون فصلش در مورد دوستی، در مورد دوستی خیلی خوبه. یا در مورد مزررات کتاب خوندن، اونم واقعا عالیه. آره. واقعا عالیه. یعنی یه حرفهایی زده که اصلا آدم واقعا خیلی روش تاثیر میذاره. من یه مطلبی نوشتم رو وبلاگم چند وقت پیش, پیش به نام نشانه های معصومیت تو کتابی همین چیزی امه. این تحت تاثیر همون آره خیلی خوب نوشته بودیم آره خوب ردی. ردی که این به اون کتاب آره دقیقاً حس دادم که مثلا یه درصد زیادی تحت تاثیر اونه و گفتم که چقدر خوب ازش الهام گرفتین چون که مثلا من به اون ترجمه فارسی دیدم خب اینو هم خیلی خلاصه تر شما گفتین توی یه صفحه و هم حق مطلب ادا شده آره. خیلی به شما تبریک میگم شما آب خوبی کردیم اون کتاب <تصفيق> آره مرسی آره. ببین همه آدما اون ارتباطی که ما با کتاب ب... من اول خودم فکر میکردم خیلی کتاب چیز مهمیه و کتاب خوندم چیز مهمیه ولی بعدا فهمیدم که خب آدم با هم فرق میکنن همه مثل من نیستن. صحیحه. بعضی بعضیا خیلی با کلمات ارتباط برقرار میکنن بعضی ها من به دریافت اینفورمیشنشون چیزهای دیگه است. بعضیا خیلی با فیلم ارتباط برقرار بعضی بعضیا با موسیقی، بعضیا با آره، بعضی ترکیبی بعضی ها... از این بعضی بعضیا ها... آره. وربال تینکرن، بعضیا نان وربال تینکرن. یعنی آره. مانی متفکر غیر زبانین. مثلا من دوستی دارم که واقعا با موسیقی ارتباط میگیره ولی نمی‌فهمه کلامو تو. بعضیا فکر می‌کنن، بعضیا هم فکر می‌کنن که فکر می‌کنه. آفرین. خلاصه همه جور جونهوری هست و که اه... کتاب خوندن یا نخوندن به چندانهای خیلی تاثیر زیادی نداره. آره. حالا شما من این روز فهمیدم که از روی رنگ چشم میشه شخصیتی یه نفر رو پی بورد. از رنگ چشم؟ آره یه اسمس تبلیغاتی گرفتم بذار اینو به شما بدم ببینم این تست رو میتونید بر بلند از آش برون بابا از این اسمس های رنگ چشم یک سبز دو آبی سه مشکی چار قهزهی پنج خاکستری شش اصلی شخصیت شما پشت این رنگ هاست ارسال عدد گزینه به مشکل گشا هر پیام صد تومان. خب و من میخواستم یکی از این شماره ها رو ارسال بکنم که حالا نزدیکتره به رنگ چشم خوب. و بعد ترسیدم چرا؟ به خاطر میتونی حدس بزنی من چرا ترسیدم؟ چون که اون شروع می‌کنه دیگه هستم نه نه از این نه حدسیدم <تصح> نمیدونم یه چیز یه،, یه حدس دیگم بزن چونکه چون که احساس کردین که خودتون رو مثلا یه اضافه نادرست میده بهتون داری نزدیک میشید هی آدما رو هی آدم میبینه هی میره تونه انگا چشماشون هی حواسشون میره نه. نه. نه از اون اس ام که اون در جواب اس من میداد من ترسیدم نمیدونم ترسیدم که بگه شما شخصیت بسیار چیفی دارین که با ستوم هم میخوایید به شخصیتتون پی ببرید خیلی خوب بود واقعا به این بودش فکر نکرده بودم راست میگین آدم مثلا کلی کتاب روانشناسی میخونه میره مثلا پیش این پیش اون تست میزنه مشاوره فلان یا حالا یه چیزای دستگیرش میشه آخه خیلی خیلی غیر منطقیه بعد اینجوری یعنی هفت شخصیت بیشتر داریم. اوه، خبرین که شما با تو هم میتونید بهش پی ببرید؟ بهش ببمیرید. و مردو مثلا هر نژادی یه شخصیت داره ولی ببین من تو همین فاصله کوتاه به یه تئوری رسیدم. چه تئوری؟ که چه جوری میشه در یه زمان کوتاهی شخصیت یه نفر رو یکم بیشتر اه فهمید؟ چه جوری؟ ببین شما در یه اینتراکشن مثلا چند دقیقه‌ای، خب؟ ولی اینتراکشن حالا حضوری هم نباشه میشه ولی حضوری بهتره. شما اگر بری مثلا به اون آدم یه دونه بزنی زیر گوشش یا یه جمله آمیز بهش بگی یا یه جمله‌ای که دست رو نقطه ضعفش بذاره یه چیزی بهش پرت کنی این که یه چیزی بیشتر از حالت عادی از شخصیت خود واقعی خودش بروز بده بیشتره تا اینکه مثلا آره ما بری باهاش راجع چه می‌دونم کتاب صحبت کنیم آره اون توی کافی شاپ وقت نشستی همه فیلسوفن الان راجب کتاب تمامی چیزهایی که گفتم امکان داره مثلا فقط بیرفت بوده چیزهایی که تو کتاب ها خونده بودم اصلا بیانگر شخصیت من نبود چیزهایی که گفتم آره. ولی،, ولی آدم وقتی اصابانه میشه یه ذره برهنه میشه انگار آه. ماسکاش یه ذره می <تصفيق> ولی آره. اون منیت سر جاشه بعد من سال دارم مثلا یه کسی بخواد بفهمه شما منیت داری چجوری میفهمه توی امتحان توی این آزمون شما. معنیت که آزمون نمیخواد همه دارن. نه خیلی بعضی یه معنیت خیلی بیشتری دارن. مثلا اسمش نمیزم یه پادکست مثلا چی؟ اسمش نمیزم یه پادکست <تصفح> خواب دیگه اون اصلا تا خودشون خودشون نشون میدن <صفح> خودشون خودشون نشون میدن اونایی که معنیتش آره دیگه ویب حالا مثلا موضوع امروز رستوران بود ولی دیگه من فکر نکنم با شما بتونیم آره موضوع رو من فقط یه موضوع کچلوه دیگه هم میخوام تو بکنم بذار اینو بگم در, در راسته رستوران آه بگو. اه مثلا میبینی که یه دونه کبابی سه در چهاره توی مثلا یه سیابون پرکی خوب. بالاش تابلو زده مثلا کبابیت محمد قولی با مدیریت جدید آقای محمد قولی مثلا استحانی خوب. خب معنیات دیگه، معنیات آره. چیه؟ راست میگی. مدیریت جدید کبابی. <تصفيق> و بعد اینا روی پارچه زرد و فونت بزرگ مشکی نوشته اون بودا. اسم خودش هم بزرگ نوشته. این معنیات پیدا کردن اتفاقا خیلی کار ساده آره راست میگی، زود الان میفهمه. خب، درته آخرت کرد. باشه تو پادکست خودم اینجوری. <تصفيق> نه، ما از که خنجر از پشت بزنیم. ما میایم خنجر رو سینه. خویا، دوباره خیلی خاصی هستی. آقای سخاوتمی، من یه چند دقیقه شده، یه یه گپ کوچولوی یه مینی گپ هم بزنیم در مورد خود پادکست، موافقین؟ اوکی، بگو به نظر شما بذار من خودم اول شما را اول قربانی مونولوگ بکنم. که پا پادکست مثلا الان چی داشته برای من این پادکست بگم؟ یه من مونولوگ من دیگه من کارم گوش کردنه دیگه. خب نه، حالا شما نتانم. میتونی یه سری تکون بدی. شما بگو، شما برای این پادکست داشته؟ من دست و دلم به قربانی مونولو کردن نمیره بگین شما که مثلا این پادکست ببین منو تو الان کانفیوز کردی من با سه زنم یا نه بزنین بزنی الان اصلا مبحث شد الان بزنین نه دیگه بگو همون چیزی که می‌خواستی مونولو آقا این پادکست, پادکست خیلی دیگه. برای من مفید بود اوکی من اول اینکه فهمیدم که چقدر نازوک حرف می‌زنم و الان این هفته اگه چک کنی می‌ذارم کولوفتر حرف می‌زنم اگه واقعیه آره یه چیز کردی چه واقعیه این صدا واقعیه آره بعدی که دیگه فهمیدم من ایرادایی که تو بقیه میدیدم چقدر تو خودم بار هستره یعنی من همیشه میگفتم مردم چرا رلِوِنس حرف نمیزنن. یعنی مربوط حرف نمیزنن. هی hey, از این شاخه به اون شاخه فکر میکردم خودم خیلی مثلاً هم. بعد تا نشستم گوش دادم میگم من که خودم از, از از بقیه که بهتر نیستم از همه یه پله بدترم. مم. بعد دوباره یه ذره مثلاً یه پادکست دیگر بابا من چقدر مثلاً خیلی عمق اندیشهی هم ندارم و فکر میکردم که مثلا خیلی آدم عمیقی هم مهم. یه این گوش دادن به مکالمه خودم خب که مهم. یه مکالمه خاصی هم هست خیلی شناخت من از خودم بیشتر کرده برای همین من خیلی علاقه دارم به پادکست همی بزنم مهم. الان دوباره که گوش میدم میبینم که او نگاه کن مثلا تو, تو یه همچین آدمی هستی و, و خیلی الان به چیپ بودن خودم بیشتر پی بردم تو... خیلی توهمای منو کم کرد این پادکست یعنی کمک کردی که تو بشناسم آره و... و خیلی از توهمای الکی من جلوی چشمم بره کنار همین مسئله مث... مثلا دلیل آوردم مثلا او می می‌نم خیلی آدم دلیل‌مندی ام برای هر حرف هم دلیل میارم بعد تو پادکست رو گوش دادم دیدم که آقا اصلا من هیچ دلیلی برای هیچ حرفی نیاوردم و خیلی به من کمک کرد و خیلی من خوشحالم که شما این پادکستو راه انداخت من مونولوگم شد خب من ایده که گرفتم خیلی ممنون بابت وقت و کمک کرده که تو شخصیتتو بتونی بهتر بشناسی من کردم که من میتونم اس های تبلیغاتی بفرستم خب و هر کسی رنگ چشمش رو اس کرد در جواب بهش جواب بدم که برای شناخت بیشتر شخصیتتان به پادکست گفت و خطاوتی زن بزنه. آره خیلی خوبه و بعد پادکست رو دوباره گوش بدی. این مثل این میمونه که آدم خودشو تو آینه نگاه بکنه. ولی خب این چیز نیست یکم شاکی نمیشن که صد تومن دادن با اون پیامک، ولی تنها چیزی که در جوابش گرفتن شماره تلفن پادکسته. صد تومن. یعنی طرف صد تومن داده که ببین من راستاً قبض بیمه‌مو بگیرم، یعنی صورت بیمه که بعد مثلا فیش بانک، مثلا فیش آب و برق دیگه. آره. یه فیش پرداختی رفتم بگیرم هزار تومن از من گرفته که این فیشو به من بده. خود رو بده فاکو. خود رو یعنی این این که مثلا مخابرات قبض تلفن شما رو به شما بفروشه. دقیقاً. حالا منم 100 تومن میگیرم که این شماره رو به آدما بدم. آره خوبه. ولی البته دیگه اینا ایناش خیلی تخریبی میشه چون همینجوری هم کسی زنگ نمیزنه به جسر دیگه چه برسه به نه امروز مگه دو نفر زنگ نزدن. خاص کجا خب چون من زنگ میزدم هی آمارشو داشتم دیگه میگفت شما مثلا اول میگفت یک نفر توی صف بعد رفت کردم یه ذره کتاب خوندم دوباره زدم گفت دو نفر حالا شاید توی اون فاصله مثلا شش نفر زنگ آره حداقل دو نفر زنگ زدی ولی آفرین حدیقل نفر. دو نفر نه آره آره امروز دو تو نفر سومین میگم دقیق پس بود حداقل نبود <تصفيق> آره من, من تعجب کردم بخاطر اینکه دقیق بود آره چون که بالاخره دیگه این هست که دولت باشه و نفر آخر خونه کریمیان باشه و این استخدام ما در سرای عثار کجا سرای عثار راستی من نمیدونم من اصلا نمیدونم ولی خیلی به اصطلاح استرس دارم که برم اونجا خیلی خوب میشه بیاین اینجا به ما هم سر بزن دیگه شاید شما بیاین به ما سر بزن ما هم سر دارم هم میخوایم اونجا. آه ما دارم داریم می ما اونجا مثلا چیز کنی؟ چقدر خوبه مثلا خدمتکاره اون سرویس نهنده یه هوتلت پا پادکستر سابقش بوده باشه خیلی خوب میشه آه. آره ولی خب فکر کنم تا اه اه اه یکی دو ماه دیگه این کارو میکنم من اگه, اگه البته بتونم استخدام بشم باشا باشا خوبه باشه بگید چقدر بوده خوب ما هم بیان حتما حتما آره چون اصلا کاسبی نمیچرخه آره امروی دوباره در مورد ترجمه با که صحبت کردم میگه قبلی به چقدر گفته میگم شش میگه وای اینا چقدر نامردن چرا نرخا رو میشکردن من ده کمتر نمیگم گفتم من چهار میخواستم به تو بدم نه بشین خودت شروع بکن دست, دست جا میوفته آره بخواب آره بشینم دست که من آره که بشینم دست که اعتماد هم که من دارم که اونو ندارم که اعتماد نفسی هم فت فت که من دار آره. الان ترجمه ها تموم شده بود. تموم شد. میلیاردر شده بود. آره، آره. آره، آقای تخوابتی، یه دونه استارتاپ ویکند ما اینجا داریم. نمیایین؟ استارتاپ ویکند اه... کی هست؟ نه نه 9 هستن فکر کنم. 9 اسفند، نمیدونم برنامه. مال اولوف پزشکیه. موضوعش هم سهلسه. م... جوایزش هم خیلی خوبه. نفر اول هزینه رفتن به آلمان و شرکت در یک کنفرانس احساسات. نمیدونم اگه بعد ببینم چه فایده‌ای برای من می‌تونه داشته من آخه خیلی مایل شدم که یه تیم تشکیل بدیم بریم اول چی بعد اه آه، از اونجا حالا اولین نفر شما رو دیدم آخه <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> اولین فکر کنم اولین چیزتون اه... اولین شروع کنم ببین اه... من فعلا تو مود انتقاد کارآفرینی و استارتاپم به خاطر همین آره من هم تیمی خوی برات نمیشه راست میگی آره من فعلا هرچی تاثير یه سری از کتابو دارم کارآفرینی رو ناقص می خیلی خوب یعنی شاید مثلا بعد از ای عوض بشه. عوض دوباره بره روی موده دیگه. آره بریم تو مودی کارآفرینی. بریم تو مودی کارآفرینی. آره. آره حالا یه کاش یه موقعی در مورد کارآفرینی بحث یه روزی. آره آره حتما حتما. خصوص اون فایلی که گذاشته بودید اونم خیلی خوب بود. خوب بود؟ آره خیلی خوب بود. آره بعدش حالا سر صحبت باز میشه دوباره یه موقعی آره. بذاریم بسته مونه در مورد اونم این موقعی صحبت میکن باشن خوح خوح. باشن. من باشن. یه معذرت خواهی احساسی هم بابت این صدا بکنم بباشن. که باشن. ماشین و ببخشید دیگه مح... شنوانده حس میکنن که در استهان هم دیگه تو خیابونه استهان آره... درم حالا یه واقع برم واسه تو بازار استهان زنی بزنم صدای چکوشی مترگارو آره اون کار آن... رو حتما بکن آره یه بار این کارو میکنم فکر آره کنم آره خیلی جالب بشه تجربه سفر به اصفهان و منم میفهم تو تبلیغ پادکستم بنویسم رایگان با من به اصفهان سفر کن من میتونم گوشی گوشی هم بگیرم یه چند دیگه مثلا گوش بدن <تصف> من میتونم بینش بگم مثلا آقای کاسب شما بیا شما هم در پادکستمو شرکت کن <تصف> اینجا لابی هتل شاه است و داریم میخوریم آره واسه یجوری خوبه نه بار از این کارها هم می شکن خب آقای سخاوتی سرتونو دردو بردم خواهش می خیلی خوشحال شدم خیلی خوشحال شدم نیستی باقتی موضوعاتت حتما خوزم زنگ می دم قاربونت خودم